ای دل چو به بزم آن سنم بنشستی از خیش بریدی و به خود پیوستی از جام پنا چجور ای نوشیدی از بود و نبودگان به کلی رستی افتاد مرا با می و مستی کاری خلقم به چه میکند ملامت باری ای کاش که هر حرام مستی کردی تا من به جهان ندیدمی هوشیاری. ای آن که نتیجه چهار و هفتی در هفت و چهار دائمان در تفتی، میخور که چهار بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چه رفتی رفتی. و ره هزار جا دام نهی، گویی کشمت اگر در او گام نهی، یک حکمت تو جهان خالی نیست، حکمت تو کنی یا آسیم نام نهی.